به نام خدای یگانه مهربان سلام قرن‌ها قبل از اختراع صنعت چاپ و تا قبل از وجود خط و فن کتابت اقوام مختلف در موقع فراغت از کار دور هم جمع می‌شدند و قصه و افسانه می‌گفتند و می‌شنیدند افسانهها سینه به سینه نقل شدند تا به زمان حال رسیدند. افسانهها نه فقط در طول زمان سفر کردند بلکه در همون زمان ها هم توسط نقالان، تجار و فروشندگان دورگرد، همراه کاروانیان از دیاری به دیار دیگه سفر میکردند. در برنامه هزار افسان یک افسانه ایرانی براتون نقل میکنند به نام افسانه پادشاه نادان، در گرفته است کتاب های از ها به گردآوری محمد رضا شمس امیدوارم بشنوید و شنیدن اون لذت ببرید روزی روزگار مردی بینواز زندگی می کرد که از مال دنیا فقط یک کلبه هسیری داشت که اون هم بر اثر باد و بارون فرو ریخت مرد بیچاره با تلاش و زحمت بسیار تونست از نو کلبهی بنا کنه نصف بام این کلبه رو با هسیر پوشند و روی اون خاک ریخت ولی چون پولش کفاف نداد تصمیم گرفت با بام رو هر وقت پولدار شد بپوشونه خلاصه مرد بینوا در همون کلبه نیمه ساخت زندگی خودش رو ادامه داد خونه جدید دیگه طمع دزدی رو به جوش آورد و با خودش گفت ها لا این مرد که تا دیروز بینوا بوده به پول و پلهی رسیده که خونه نو ساخته. و بعد تصمیم گرفت نیم شب به خونه مرد بینوا دست برد بزنه. روی پشت بون رفت و از اونجایی که سقف نیم کار بود خراب شد و فرو ریخت و دزد روی مرد سادخونه که زیر بون خوابیده بود افتاد. بیچار مرد بینوا از ترس زبونش به لکنت افتاد و گفت اه اه اه اه تو تو, اه تو تو کی کی, کی هستی؟ دزد که خونه رو خالی دیده بود با عصبانیت گفت مرده چه بی ارزه اینم خونه است که تو داری؟ اخ نزدیک بود پام بشکنه و بلایی سرم بیاد بعد هم با عصبانیت خونه مرد بینوا رو ترک کرد و به دربار رفت تا از مرد بینوا شکایت کنه. پادشاه با دیدن دزد عصبانی ازش پرسید: تو کیستی و چه کار داری؟ باید کار مهمی داشته باشی که این وقت شب به دربار آمدی ها؟ دزد تعظیم می کرد و گفت: شاه من از دزدان حرفه‌ایم. امشب به خونه شخصی رفتم تا چیزی بدزدم. اون خونش محکم نبود و فرو ریخت. من سقوط کردم و چیزی نمونده بود که جفت پاهم بشکنه. پادشاه سری تیکوندرد گفت: "حاجب، حالا از ما چی میخوایی؟ دوست گفت: "قربان، قربان، مجازات" من از شما استدعا دارم صاحبخونه را مجازات کنید پادشاهم دستور داد صاحبخونه رو احضار کنمد چند دقیقه بعد مرد بینوا وحشت زده و نگران وارد دربار پادشاه شد و با لکنت زبان گفت قبله از من از من چی گناهی سر زده؟ پادشاه گفت درسته که این مرد از بوم خونه ی تو افتاده؟ مرد بینوا نگاهی به دو زندخت و گفت درست قبله اگه, اگه روی من نیفتاده بود حتما پاش میشکست دزد تکید اضافه کرد بله بله جفت پاهم میشکست پادشاه نگاهی به مرد بینوا انداخته انداخت و گفت پس به جرم مرد باید به دارا ویخته بشی مرد بینوای بخت برگشته با عجز و نالو گفت ای پادشاه آدل، من, من بیگناهم، مقصر مقصر اصلی اونه اون بنایی که بوم خونه منو اینجوری پوشونده اون مقصره اون مغصر اصلیه، من بیگناهم پادشاه فکری کرد و گفت این مرد رو مرخص کنید و فورا اون بنای گناهکار رو بیارین زود باشین، اون باید به دار آویخته بشه قراولان پادشاه بر نای بی خبر از همه جا رو به دربار احزار کردن قراولان پادشاه بر بیچاره رو به دربار آوردن و جلاد خواست اون رو حلقاویز کنه. بنا به التماس افتاد. قبله, قبله یارم، به من رم کنید. خواهش میکنم. اجازه بدین، ارز کنم. خواهش میکنم. پادشاه با عصبانیت گفت. چه عرضی مردک؟ بنا یه فلک گفت. قربان قربان من در این ماجرا بی تخصیرم. گناه اصلی به گردن حسیر بافه که حسیر رو گشاد بافته. اگه اگه اون حسیر رو محکم میباف پاره نمیشد و دوس از بوم نیمی افتاد. بله، مقصر اصلی اونه. پادشاه فکری کرد و حکم بر بیگناهی بنا داد و دستور داد حسیر باف رو هرچه زودتر به دربار احزار کنن تا هرچه زودتر گناهکار اصلی به سزای اعمالش برسه. برای هم فوراً به سراغ حسیر باف رفتن، و اونو به دربار پادشاه ها وردن بافی بیچاره که نمیدونست ماجر رو از چه قراره و برای چی اونو به دربار پادشاه آوردن با وحشت و نگرانی گفت چی شده؟ من کاری نکردم من جرمی مرتکب نشدم سرم به کار خودم باور کن این کار خلافی انجام ندادم من, من بیگناهم بیگناه. پادشاه با عصبانیت فریاد زد خاموش؟ مردک سهلنگار بعد خطاب به جلاد گفت دارش بزنید دارش بزنید مردک سهلنگار رو مرد باف با نگرانی پرسید قربان قربان قربان صب کنید از من چه سهلنگاری سر زده پادشاه مرد بینوا رو به باف نشون داد و پرسید تو تو حسیر بوم خوره این مرد رو بافتی؟ حسیر بافت نگاهی به مرد انداخت و گفت بر, بر غبله یارم، اونم از حسیر مرغوب پادشاه با عصبانیت فریاد زد حسیر مرغوب دارش بزنید همه گراهان به گردن اونه حسیر بافت التماس کنن گفت قربان، قربان، اجازه بدین خواهش میکنم من تقصیری ندارم پادشاه پرسید پس تقصیر کی مرد که دروگو؟ مگه تو اون حسیر رو نبافتی ها؟ حسیر باف جواب داد ای hey, قبله یه حالم من همیشه محکم بوده اما وقتی که داشتم این حسیر رو میبافتم حواسم به کبوترهای همسایه بود که توی هوا چرخ میزادن به همین خاطر هسیر سست و گشاد از آب در اومد بنده را اف کنید میدم از این به بعد بیشتر حواسم را پادشاه با فریادی برند کلام مرد حسیرباف را قطع کرد و گفت این مرزت را آزاد کنید فورا اون کبوترباز را احزار کنید باید عدالت در این سرزمین اجرا بشه زود باشین و بعد قراران پادشاه به سراغ کبوترباز به راه افتاده. دراولان گشتند و گشتند تا مرد کبوترباز رو پیدا کردن و اونو کشون کشون به دربار پادشاه هوردن. پادشاه با دیدن کبوترباز با عصبانیت گفت ها حالا دیگه با کبوتربازیت حواس مردم رو پرت میکنی و مشکل به وجود میاری ها؟ کبوترباز با ناباوری و تعجب پرسید من قربان. کدوم مردم؟ چه مشکلی؟ من دلت بکنم قربان من سرم به کار خودمه. من با مردم کاری ندارم. دنیای من چند تا کبوتره و از صبح تا شب با اونام با کسی کاری ندارم. پادشاه با عصبانیت گفت مسئله همین جاست تو با کبوتر بازی خودت حواس حسیر باف رو پرت کردی؟ و اونم هسیرشو سس بافته و کلی مشکل به وجود آورده پادشاه تمام مشکلات رو یک به یک برای مرد کبوترباز گفت و بعد اضافه کرد و الان باید به سزای این حواظ پراکنی بیموقت برسی یلا زود باشید این مردک که کبوترباز رو دار بزنید جلاد آماده شد تا کبوترباز رو دار بزنه اما کبوترباز با التماس گفت ای پادشاه بزرگ، گناه من چیه که کبوتربازی رو دوست دارم ها؟ شما از مرگ من چه بهرهی میبرین؟ لاغل همون دوز رو دار بزنین که دوباره دردسر درست نکنه و همه مردم از دستش راحت بشن بله، این، این بهترین عدالته پادشاه با شنیدن این حرف کمی به فکر فرو رفت و چند دقیقه بعد گفت حق با کبوتربازه گناه کار اصلی همون دزه است دوست رو باید دار بزنید مأموران دوست رو آماده کرد مهموران پادشاه دوز رو پای چوبه دار بردن. اما دار کوتاه بود و پاهای دوز که قد بلندی داشت به زمین میرسید رسید. نس پادشاه رفتند و گفتند قبله ی آلم قد دوز بلنده و پاش به زمین میرسه رسه. چاره ی کار چی قربان؟ ی آلم چه دستوری میفرمایند پادشاه با اصابانیت گفت احمق خا. این که سوال کردن نداره اگه پای دوز به زمین میرسه آدمی رو پیدا کنید که پاش به زمین نرسه. مأموران کوچه به کوچه گشتند و گشتند تا مرد کوتا‌قدی رو پیدا کردند که کیسهای به کور داشت مأموران پیرمرد بیچاره رو کشون, کشون پای چوبه دار بردن پیرمرد بیچاره با دیدن چوبه دار به وحشت افتاد و خطاب پادشاه که برای بازدید مراسم اعدام اومده بود گفت قربان، قربان، ای پادشاه بزرگ آه، من آدم بینقای هستم کارم اینه که از کوهی زوم بیارم یا بارکشی کنم و لغم نونی حلال برای ایال و اولادم فراهم کنم من باید به چه جرمی به دارا بشم من مرتکب چه خطایی شدم قربان؟ پادشاه جواب داد ای مرد که نادن موضوع گناه و بیگناهی نیست امورات کشور باید سر و سامان پیدا کنه امروز باید هر طوری شده یه نفر رو به خاطر شکایت دوزدار بزنیم تا عدالت برقرار بشه فهمیدی؟ پیرمرد با خوشحالی گفت دبله آلم. دوزد دوز رو باید حلقاویز کنید. مقصر اصلی اونه. عدالت با بدار کشیدن رو اون اجرا میشه. پادشاه فریاد زد. مردک که احمق تو نمیخواد به من درس عدالت بدی. پیرمرد با ترس گفت. قربان، جسارت منو ببخشید. محض یادآوری عرض کردم قربان. پاچه ها گفت منم میدونم گناهکار اصلی خود دزده ولی چه کنیم که قد اون خیلی برنده و موقع دار زدن پاش به زمین می رسه اما تو قد کوتاهی داری و برای دار زدن مناسبی پیر مرد فکر کرده گفت قربان اجازه بدین من پیشنهادی به شما ارز کنم که گناهکار اصلی که همون دزده به سزای عملش برسه پادشاه پرسید، چه پیشنادی؟ پیرمرد گفت، قبله آلم چند دقیقه ای اگر به من فرصت بدن ارز میکنم و پادشاه به پیرمرد مهلت داد تا فکر کنه و پیشنهاد و چاری کار رو بیان کنه چند دقیقه که گذشت پیرمرد با خوشحالی گفت قربان قربان چاره کار رو پیدا کردم پادشاه پرسید چاره کار چی پیرمرد بگو پیرمرد گفت ای پادشاه من چاره درازی قد دوز اینه که زیر چوبه دار رو کمی گود کنید تا پای اون توی هوا آویزون بمونه اینجوری هم عدالت اجرا شده و هم بیگناهی مثل من بینوا رو به کشتن ندادید. پادشاه بعد از کمی تعمل خطاب به وزیرش گفت مثل اینکه این, این پیرمرد چندان هم نادون نیست. وزیر هم اضافه کرد درست delegate‌ی این پیرمرد راست میگه از این طریق میشه عدالت رو اجرا کرد قربان. پادشاه. سری تکون داد و اعلام کرد فورا برین و دز رو پای چوبه دار ببرید و مشغول کندن زمین زیر پاش بشین امروز باید عدالت در این سرزمین اجرا بشه خلاصه جلادان یه بار دیگه دوز رو پای چوبه دار بردن و مشغول کندن زمین زیر پای اون شدن پادشاه هم. در کناری ایستاده بود و از اینکه عدالت اجرا میشه احساس و غروع میکرد. دوست که دید کم مونده واقعا به دار آویخته بشه، فکری کرد و به جلادان گفت. زود باشید، زود باشید، عجله کنید، رو آماده کنید، نماید فرصت رو از دست بدم، به خواه که پدرتون هر چه زودتر منو دار بزنیم. جلادان؟ و پادشا با تعجب به حرفای دوز گوش دادن و پادشا پرسید چی شده؟ چرا اینقدر برای مردن عجله داری ها؟ تو که تا حالا از مجازات فرار می کردی و این و اون رو گناه کار می گفت دوز گفت قبله یارم. همین الان پادشاه بهشت از دنیا رفت و وصیت کرده اولین کسی که بعد از مرگ اون از دنیا بره به جای اون پادشاه بهشت بشه. برای همین هم من میخوام قبل از همه روانه اون دنیا بشم و پادشاهی بهشت نصیب من بشه. شاه با شنیدن این حرف به فکر فرو رفت و با خودش گفت. چرا سلطنت بهشت نصیب من نشه؟ سلطنت بهشت برازنده منه نه این مردک دوست بعد پادشاه فورا دستور داد دست نگه دارید دست نگه دارید جلادان دست از کندن زمین کشیدن و منتظر فرمان پادشاه موندند پادشاه گفت این مردک دوز رو از اینجا دور کنید و به منو دار بزنید جلادان از شنیدن این حرف پادشاه با تعجب به هم دیگه نگاه کردند پادشاه بر سر اونها فریاد کشید معطل چی هستید مگه نگفتم منو دار بزنین منتظر چی زود باشین فرصت از دست میره زود باشین؟ و جلادان که هنوز از این فرمان پادشاه متعجب بودن فوراً امر پادشاه رو اطاعت کردند و اونو به دار آوردند افسانه ای ایرانی پادشاه نادان رو براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب افسانههایی از احمق‌ها به گردآوری محمد رضا شمس و ما یک نکته درباره کیفیت زبان نگارش افسانه‌ها. زبان و بیان بازنویسی های عامیانه باید ساده درست و نزدیک به گفتار مردم باشه تا اصالت اون حفظ بشه. در حد امکان تصویرها باید بار فرهنگی افسانه رو حفظ کنند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار بهار دیویان اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر حساری جایی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرود